أعوذ بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كبرت و اذا نجوم كدرت و الجبال سيرت و العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت. وإذا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وإذا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وإذا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ سُورَهِ مُبَارَكَيْهِ تَكْوِيرَ حَسْتُ سُورَهِ تَكْوِيرِ يا اِذَا الشَّمْسِ سوری هست که در این سوره مبارکه الله عز و جل بسیار وحشتناکی را و سحنهای عجیبی را از قیامت از آغاز قیامت قبل از قیامت و بعد از اینکه قیامت شروع میشه، الله تعالی بیان فرموده، همون طوری که عرض کردم، صحنهایی از قیامت هست در حدیث نبوی وارد شده که هر کسی میخواد قیامت را با همین چشمان خودش ببیند، بی با همین چشمان دنیا که خدا داده هر کسی میخواد قیامت را ببیند. بی سوره تکویر را بخواند که در سوره تکویر الله تعالی همه سحنه را مجسم فرموده طوری بیان فرموده که گویا انسان مشاهده می کند انسان می بیند و در روایتی دیگه هست که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک روزی به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند عرض کردند یا رسول الله، اونقدر که سن شما هست، شکل شما اونقدر نشان نمیده، شکل شما پیرتر شما را نشون میده. سن شما زیاد نیست، این زمان سن رسول الله حدود 6 سال بود. ولی شما از این خیلی پیرتر معلوم میشید رنجورتر معلوم میشید ضعیفتر معلوم میشید آن حضرت صلی الله علیہ وسلم از نظر ظاهری پیر معلوم نمیشدند، شدند خصوص از نظر موها در بعضی روایتها از حضرت انس رضی الله تعالی می فرماید که وقتی که آن حضرت صلی عليه علیہ وسلم وفات کردند از لحیه مبارک، از ریش مبارک فقط بیست تا تار سفید شده بود. یعنی تمام ریش آن حضرت سیاه بود، سفید نبود، فقط بیست تاش سفید شده بود. از نظر ریش موس پیر نبود، اما آن حضرت صلی الله عليه و از نظر شکل پریشان معلوم میشد، رنجور معلوم میشد. ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله اونقدر که سن شما هست شما از اون بیشتر پیر معلوم میشید دلیلش چیه چه چی موضوعی شما را ناراحت کرده چه موضوعی شما را نگران دارد آن حضرت صلی الله علیه و سلم پنج سوره منو پیر کرده پنج سوره هست که این پنج سوره باعث ضعف و پیری من شده یکی سوره یهود فرمود و یکی سوره واقعه و یکی سوره ملک و یکی سوره ببخش سوره مرسلات سوره واقعه مرسلات نبع عمیت سالون و سوره تکویر این سوره را بیان فرمود که این سوره را وقتی که انسان میخواند خاند با سحنه های مختلفی از قیامت مواجه میشه ربط این سوره با سوره گذشته این هست که در سوره گذشته ما خاندیم الله عزوجل از قیامت و از تکالیف و مشقتهای قیامت بیان فرمود به اندازه که اقارب انسان نزدیکان انسان خیشاوندان درجه یک انسان پدر و فرزند حتی به درد هم دیگه نمی خورم، به درد انسان نمی خورند و هر یکی نفسی نفسی برای خودش دفاع می کند برای نجات خودش تلاش می کند. حال در صورت تکویر میخوانیم که در قیامت بعد از حساب و کتاب شما مستقیما به جاهای می روید که برای شما تعیین شده و از اون جاها خارج نمی شوید اما در این سوره مبارکه خدای تعالی ابتدای سوره دوازده تا احوال بیان فرمودند که از این دوازده تا احوال تا قبل از قیامت هستند قبل از اینکه قیامت آغاز بشه و تا بعد از وقوع قیامت هستند دقت بفرماید این دوازده احوال را اولین اینا تخویف اخروی هم هستند الله میفرماید و اذا شمس کورت زمانی که خورشید بینور میشه اصل تکویر میگویند پیچوندن را این عمامه که به سر بسته شده این پیچ عمامه را را میگن کور عمامه کور همین پیچ را میگن تکویر به معنای این که به ذات خورشید پیچونده میشه جم میشه یعنی خورشید نورش گرفته میشه و اذ نجومون کدرت اینا همه قبل از قیامته وقتی که ستاره یکی بعد از دیگری می افتے نور از اونها گرفته میشه و می افتے و واذا الجبال سيرت وقتی که کوها سیر داده میشه سیر کوها اینه که قبلا خاندن کوه تبدیل میشه به ریگستانی پودر میشه گوبه میشه و بعد اون ریگها به راه می حرکت میکنه واذا العشار عطلت وقتی که مالهای نفیس و مالهای باارزش معتل میشه به حال خود رها میشه اصل عشار میگویند شطوری را که آبستن باشد و ده باشد معمولا شطور بعد از ده ماه زائمان میکند و عرض کنم که شطور بچهش را به دنیا می آورد میداریم که شطور کسانی که مالداری شطور میکنند یکی از بهترین صحنه های اونها همین لحظات است و همین روزهایی است که شطور میزاید چون دوتا منفعت به انسان میرسه دوتا خوشی میرسه، یکی اینکه یک شطر جدیدی وارد میشه، مال انسان گویا دو برابر میشه یهها دو برابر میشه و دوم اینکه بعد از اون شیر به انسان میرسه که این شیر کلش حکمت و فایده داره لذا در این روزها صاحب شطور سعی میکنه که یک لحظه چشم از او بر ندارد این مال ارزشمند این مال نفیس که همه انسانها دوست دارند الله میفرماد وحشت اون روز و خطر اون روز به ای هست که این شطور به حال خود رها میشه معتل میشه یعنی تهویل گرفتنا میشه هیچ کس به سمت سوی او نگاه نمیکند و اذا الوحوش حشرت وقتی که وحشیها، حیوانات وحشی جمع میشوند، شوند حیوانات وحشی چطور حشر میشوند، شوند چطور جمع می گرچه بعضی این مفهوم را ذکر کردن که قیامت که بشه حیوانات را هم از بعد از این که مردن زنده میکنند، حیوانات فایده چیه؟ چون در یک حدیثی میاد که حتی اون حیوانی که شاخ نداشته و اینجا شاخ خورده در دنیا انتقام خودش را از او شاخی می گیرد اون روز خداوند عزوجل دستور میده که این بیشاخ شاخی را بزند اما اصلش اینه که مکلف فقط جن و انسان است حیوان مکلف نیست حیوان عقل و درکی ندارد که از حیوان محاسب گرفته بشه بس این چیزی که در حدیث آمده کنایه از عدالت هست یعنی انقدر عدالت در قیامت برپا میشه که بلفرض اگر حیوان شاخی بی شاخ اگر زده اگر اینها هم مکلف بودند اونجا زنده می شدن دو از همدیگه انتقام می گرفتن. پس در واقع حیوانات وحشی اونجا حشر نمی دوباره زنده نمی شوند این معنای این آیه چی هست؟ یک معنای این هست که حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کردند و از ایشون منقول است ایشون می‌فرماید که حشر البهائم موتها حشر چارپایان یعنی یعنی مردن اونها وقتی که این تحولات و این اتفاقات میوفته انفجارات قیامت آغاز میشه نور خورشید گرفته میشه ستاره یکی بعد از دیگری میوفته تمام حیوانات وحشی و اهلی میمیرند این به این معنی هست و اید الوحوش و حشرت حشرشون یعنی چه؟ یعنی مرگشون اما بعضی مفهوم دیگه هم گرفتند حشر بهایم جمع شدن به این معنی هست که حیوانات وحشی که از شما اینقدر فرار میکنند شما هر وقت برید جنگل بیابان تا از دور شما را ببینند ماشین شما را ببینند تا جای که میتونند انها فرار میکنند از شما وحشت دارند اما وقتی که اتفاقات قیامت آغاز میشه و حوادث قیامت آغاز میشه چنان وحشتناک است و چنان مهیب هست که انها پناه میبرن به انسانها اونها فرار میکنند به سوی انسانها می جمع میشن. یعنی اون وقت شما برای اونها محل امنی هستید اونها از اون اتفاقات از اون حوادثی که تو جنگل و تو بیابان میفته از اون چیز مشاهداتی که اونها مشاهده میکنند از اونها میگوریزند شاید تجربه کردید همین حیوانات اهلی که تو خونه های ما هستند مثل گوسفند مثل مرغ اینایی که ما نگهداری میکنیم معمولا ما وقتی بریم نزدیکشون از ما فرار میکنند اما گاهی یک اتفاق عجیب بیمی افتگاهی مثلا یک رعد و برق شدیدی میشه همین حیوانات هم فرار میکنن به طرف ما میاند همینها هم میدوند تو خونه میاند خودشون رو پناه میبرند یعنی همین هایی که از پیش شما فرار میکنن دوباره به سمت شما میآیند. اینها شما را محل امنی برای خودشون میبینند بعض این تفسیر کردند که حیوانات دررنده و وحشی که همیشه از شما فرار میکنن اون وقت جمع میشن به سمت سوی شما به شهرها به روستاها به آبادیها میان پناه میبرن از بس که وحشت است الله نجات بده و اذا البحار و سجرت وقتی که دریاها جاری میشن البته تسجیر را دو معنی کرده یکی در گرفتن و آتش گرفتن است و بعضی گفتند دریا جاری میشه دیگه موجها به راه میفته تمام خشکی را دریا میگیرد و ایدن نفوس و زب وجد و ششمین حالت وقتی که نفوس با هم جفت میشوند نفوس با هم جفت میشوند یعنی چه تفسیرهای زیادی کردن یک تفسیرش اینه که وقتی که ارواح و بدنها با هم دیگه یک جا میشن چون وقتی که انسان میمیرد روح میره در عالم ارواح و بدن در قبر قرار میگیرد در زمین میماند وقتی که قیامت بشه روح و بدن دوباره با هم جفت میشه یعنی با هم یک جا میشه انسان دوباره زنده میشه یک مفهومی که ذکر کردند اینه یک مفهوم دیگه اینه که نفوس یعنی انسان ها با هم دیگه جفت میشن. هر یکی از انسان ها با هم کیش و هم نوع خودش مثلا با بدان با بدان یک جا میشند نیکان با نیکان یک جامی شند، خوبان با خوبان، ابرار با ابرار. به این است که هر نوعی با هم دیگه یک جامی شمن. و اذل وقتی که اون دختره که زنده بگور شده، از اون سؤال میشه، از اون پرسیده میشه که به ایی زمین قتلت، به چه گناهی کشته شده. منظور اینه که وقتی که حساب و کتاب آغاز میشه. پاسخ هر ظالم باید پاسخ بده در هر مظلوم پرسیده میشه و اذا صحف و نشرت وقتی که صحیفه اعمال و نامه اعمال هر که باز میشه ای انسان تو چیکار کردی بیا اعمالنامیت رو بگیر باز کن بخون هر یکی اعمالنامیش باز میشه و اذا سماؤ کشتت وقتی که آسمان پوست کنده میشه اصل میگوین کشت این را که حیوانی را شما پوست بزنید و پوستش را در بیارید معنی اینه که آسمان یک غلافی در این غلاف برداشته میشه و همه چیز ظاهر هست چون که الان اون غلاف و اون پرده که هست ما تو آسمانها را نمیبینیم زمین شما زمین هر جای زمین برید هیچ جای پرده ای نیست هر جای زمین تا چشمت کار بکنه میبینی کوهی روی زمین هست میبینی چالهی ای بینی چای هست بینی آبی ته زمین هست بینی هرچی تو زمین است. اما آسمان گرچه از ما دور هست ولی آسمان یک پوست داره یک پرده داره یک حجاب داره که اون روز برداشته میشه اون روز که برداشته بشه هم جهنم دیده میشه هم بهش دیده میشه هم عرش دیده میشه تمام اون چیزی که اونجا هست دیده میشه الله می فرماید. و اگر سماو خشیت وقتی که آسمان پوستش درآورد میشه و اگر جحیم سعیرت وقتی که جهنم سعیرت یعنی شوالیه ورتر میشه نزدیکه که مجرمین را اونجا ببرند اون میگردد اون شوالیش بیشتر زبان میکشد اون بیشتر آماده میشه که هر کسی را که داخلش بردند خوب بسوزانند الله نجات بده و جنت و اذلفت وقتی که بهشت نزدیک آورده میشه نزدیک قرار داده میشه مفسری این مفهوم را گفتند که بهشت از جایش جابجا نمیشه شما انسان ها را شما مؤمنان را میبرن نزدیک بهشت قرار میدن گویی بهشت از شما نزدیک قرار داده میشه لذا همه این اتفاقات که میفته و قیامت برپا میشه علمت نفس ما احضرت هر نفسی میداند آن که حاضر کرده هر چی حاضر کرده خیر یا بد نیکی یا بدی انسان میدونی من چیکار کردم و باید جواب بده فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس الله تعالی چند چیز را سوگند یاد کند قسم خوردن به اینها معنادار است اول الله میفرماید که سوگند به خنس خنس جمع خانس هست خانس اون ستارهایی را میگویند که اول میروند بعد به عقب برمیگردند به عقب برمیگردند الجوار اون ستاره میگه که راست میره جاریه هست الکنس الکنس اون ای را میگن که مخفی میشه پنهان میشه خب مراد کدوم ستاره ها هستن مفسری میگن مراد ستاره های پنجگانه خمسه متحیره میگوین کسانی که با علم ستاره شناسی آگاهی دارند اطلاع دار می شناسند خمسه متحیره اینا رو به خاطر میگن که گویا اینها حیران هستند از هر روزی از یک جای طلوع میکنه هر روزی به یک سمتی میره به این خاطر متحیره اینها رو میگن اینا پنج تا هستند این خمسه متحیره زحل مشتری زهره عطارد مریخ این پنج تا ستاره هستند سه حالت برای اینها بیان شده. یکی که ببینید وقتی که صدار طلو میکنه از طرف مشرق طلو میکنه. لذا از این طرف که طلو میکنه دوباره برمیگرده خونس به همین معنی که بر میگرده اون ساعتی که برمیگرده منو میبینیم می بینیم. جوار اون ساعتی که جاری هست میره ما می بینیم که داره میره به طرف مغرب شبها. این ساعت اینجا یک ساعت بعد اینجا هست همین طور کم کم میره کنس کانس میگه اون ساعتی که مخفی میشه یعنی غروب میکنه سه حالت را شما برای این فرشته برای این ستاره میبینید یکی که داره راه میره یکی که داره غروب میکنه یکی که ندیدی دوباره اول جای اول قرار گرفت لذا خدا تعالی این سه را بیان میفرمازد منظور اینه که این ستاره های پنج گانه متحیره که اینها در واقع بر میگردن یک بار به همون جای اولشون دوباره راست میرند دوباره غروب میکنند به اینها سوگند یعنی اینها شاهدند و همچنین واللیل اللیل اذا شب وقتی که میرود شب که برود چی میاد؟ صبح میاد این واللیل اللیل اذا مثل اون هست و اذا پشت میده، خب شب که پشت بده، شب که بره میشه صبح و صبح اذا تنفس، صبح وقتی که تنفس نفس بکشد صبح که تنف، نفس بکشد هم روز میشه دیگه ببینید این هر دو حالت شب که بره هم روشنی, روشنی میاد صبح که نفس میکشد اول صبح هم روشنی میاد یعنی گویا خدای عزوجل میفرماید که این موضوع چنان روشن است این چیزی که من بهش قسم میخورم مقسم به چنان روشن است چنان واضح است که هیچ نیازی به دلیل ندارد خب خداوند عزوجل که رفتن شب را ذکر میفرماید که بعد از اون سپیده صبح چنان واضح است و صبح وقتی که نفس میکشد اول صبح میشه شه واضح است چه چی چیزی را میخواد الله اثبات بفرماید اون چیه که واضح است؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کریم حقانیت قرآن است یعنی مثل سپیده صبح و رفتن شب و بعدن روشن شدن هوا همین طور واضح است که اِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کریم. این سخن یعنی قرآن سخن رسول معززی هست منظور از رسول معزز جبرائیل امین هست که جبرائیل امین قرآن را آورده وحی کرده دو واسطه برای قرآن هستند سوم به خدا میرسه ببینید به ما رسیده از طریق رسول الله صلی الله علیه و وسلم و به رسول الله رسیده از طریق جبرائیل پس بین ما خدا و بین خدای عزوجل دو واسطه هست یکی جبرائیل هست یکی رسول الله هست الله تعالی هر دو واسطرنجا تعریف میکنه اولا جبرائیل رسول کریم فرستاده معززی هست از سوی پروردگار چنان معزز هست که همه فرشتگان به او احترام میگذارند ذی قوت دارای قدرت هست هیچ جنی، هیچ شیطانی، هیچ روحی از ارواح خبیصه نمیتونه جلوی او را بگیرد. اون چنان قوت دارد، چنان قدرت دارد که یک شهر صدوم را با یک بالش میبره می میکند قوم لوت. خاندی شما، عندز عرش ماکین نزد دارای عرش یعنی نزد پروردگار این فرشته جایگاه دارد، عزت دارد، قدر منزلت دارد. مطاع و در اون آسمان ها متاع هست یعنی همه فرشتگان مطیع او هستند و او متاعی همه است او در واقع مخدوم همه هست همه خادم او هستند او متاعی همه هست همه مطیع او هستند ثم امین و انجا امین هست امین هست یعنی اون چیزی که از سوی پروردگار به او سپرده شده که به قلب محمد صلی علیه و وسلم نازل بکند او خیانت نمی کند، او امین هست. پس این واسطه ای اول است. واسطه اول دارای ای این صفات است، دارای ای این ویژگیها هست. واسطه دوم که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم هست قرآن از طریق رسول الله به رسیده. الله می‌فرماید: و ما بمجنون این صاحب شما، این همراه شما، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم دیوانه کی نیست ان ترکی شما می گوید. این شما میگویید. اینها چی میگفتند مخاطبین اولین قرآن قریش مکه آل ایاضویل می میگفت مجنون است. الله میفرماد مجنون نیست. دلیلش چیه؟ صاحب قیاساتها قیاساتو ها معها این قاضیه قیاساتو ها معاها. یه ای هست که دلیلش همراه با خودش هست پیغمبر از کجا بدونیم که جنون ندارد مثلا مشرکین میپرسیدند ابو جهل میپرسید صاحبکم همراه شما بوده با شما زندگی میکرده از اون تفولیت تالان که چل سالگی هست در میان شما بوده آیا یک روزی در او حرکت غیر عاقلانی مشاهده کردی. یک روزی صحبتی کرد که صحبتش دیوانگی باشد. یک روزی حرکتی کرد که حرکتش دیوانه باشد. حرکتی دیوانه خود رسول الله قرآن میگه پیغمبر به اونها گفت فقط لبستو فیکم عمرم من قبله ای قریش مکه ای مخالفان من من در میان شما یک عمر زندگی کردم افلات عقلون شما عقل ندارید شما خرد ندارید اگر من دیوانه بودم یک روزی حرکت جنونامیزی از من می دیدید اگر من شاعر بودم یک روزی جلوی شما شعر سروده بودم اگر من کاهن بودم یک روزی اخبار غیبی بی خود و بی جهت جلوی شما می گفتم ولی این همه سال چهل سال من هیچ حرکت بی جای از من ندیدید هیچ شعری از من نشنیدید. و هیچ خلافی و کذبی من نگفتم شما به من میگفتید محمد امین به من میگفتید محمد صادق الان که کلام خدا را آوردم الان مجنون شدم اللہ می فرمد و ما صاحبکم به مجنون این صاحب شما این رفیقی شما که با شما یک جا زندگی کرده شما خودتون از مصاحبتش باید گواه باشید که این دیوانه نیست و این جبرایل امین را دید و لقد رآه بالوفق المبین همانا اون هما را دید در افق مبین یعنی در افق منظور از افق افق مشرق است در افق مشرق دید صورت واضح و روشن دید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جبرایل امین را زیاد مشاهده کرد اما هر بار شکل انسان می دید شکل دحیه کلبی می دید بشکل های دیگه می دید اما دو بار به شکل اصلی شدید یک بار در همین ابتدای بقسات دید او را و یک بار در شب معراج دید الله تعالی می فرماید وما هو على الغیب بضنین او نسبت به غیب بخل ندارد یعنی اخبار غیب هر که بود بیان کرد اون چیزی که از عالم غیب آورد هیچ چیزی مخفی نکرد همه رو برای شما ذکر کرد و ما هو بقول شیطان الرجیم این سخن را شما ببینید این قرآن چه سخنان و چه مواعظ حکیمانی دارد چه اصول و قوانین جالب و زیبایی دارد به چه زیبایی از حقوق صحبت میکنه از دستوراتی که با شما انجام بدید صحبت میکنه از تو که با خدا باید داشته باشی صحبت میکنه از تو که با هم دیگه داشته باشی صحبت میکنه لذا این کلام میتونه کلام شیطان رانده شده باشه اعوذ بالله فاین تذهبون ای انسان ها شما کجا داری میرید کدوم معادله منحرف داری میرید که این کلام زیبار شما نمی پذیرید قبول نمی کنید ان هو الا ذکر للعالمین نیست این قرآن مگر پندی برای عالمیان جهانیان للعالمین که گفت نشان دهنده این هست که رسالت رسول الله صلی الله علیه و وسلم برای همه جهانیان است برای همه دنیا و اهل دنیا است اینطور نیست که بعضی میگویند خب پیامبر خدا بوده اما پیامبر عرب ها بوده ما ایرانی ها گاهی متاسفانه وقتی که به اون تعصب فارسی و ایرانی گریم و نمی میگیم خیلی ها میگویند تو این فضای مجازی نوشته خب اسلام دین عرب هاست نخیر قرآن را اللہ عزوجل فرستاده پندی هست برای عالمیان پندی هست برای همه جهانیان پندی هست همه باید از این پند درس بگیرند لمن شاء منکم البته هر کسی از این نمیتونه بهره بگیره کسی که بخواهد لمن شاء منکم این یستقیم هر کسی که میخواهد بر مسیر مستقیم بر صراط مستقیم و بر صراط گام گامزن بشه او از قرآن پند میگیرد اما الله تعالی اینجا هم می فرماید و ما الا الله رب العالمین مشیت شما هم به مشیت رب العالمین بستگی دارد چرا چونکه خدای از عز عزوجل قلوب را نگاه میکند درون شما را نگاه میکند اگر در درون شما تعصب باشد اناد باشد ضدیت باشد نخوت و غرور و تکبر باشد صفاتی که ما قبلا خاندیم انسان را از هدایت محروم می کند اگر اون صفات در درون شما باشد اون وقت مشیت خدا بر هدایت شما نقاهاد بود لذا اول باید قلب را و دل را از این آلائش ها پاک بکنی در دل تعصب نباشد اناد و زد نباشد تکبر و غرور نباشد اون وقت خدای از و هدایت شما را و دینداری شما را مقدر می کند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین مگر اینکه الله بخواهد که رب عالمیان هست این سوره مبارکه تکویر بود که سوره مکی بود و از نظر ترتیب حفتمین سوره بود که بر آن حضرت صلی الله و وسلم نازل شد